بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والسلام و على سیدنا و نبینا و بالعاصم محمد و علی تیبین التاهرین سیم بقیت الله في العرزین خیلی خوشحالم که خدمت عزیزان هستم. اینگونه که قبلا صحبت شد گفتیم که قرار بر این بود یه مثلا بحث انگیزشی بیشتر مطرح بشه. حالا آقایون میگن که مثلا شما خودتون قران و حدیث می خونید بیشتر دنبالش. حالا انگیزش برای کسانی که بیگیر هستن، شاید تحصیل حاصل باشه ولی من یه سری مطالبی رو عرض میکنم این رو با خیلی از دو مطرح کردم به نظرم میرسه که به عنوان دقدقه شما بهش توجه کنید مفیده حوییت سنفی روحانیت طلبگی یا خوندی هرچی که بگیم یه اقتضاعاتی داره یعنی ما حالا چه به سرها و یا دیگرانی که ممکنه امام بعدن بخوام بذارن یه هویت خاص سنیفی پیدا میکنیم تصور دیگران از ما اینه که ما معارف قرآن و پیامبر و اهل بیت رو یه مقدار خبر داریم و همون وجاهت و شخصیت و مراجعی که برای ما پدید اومده ناظر به همینه و الا هیچ ویژگی متمایزی نسبت به دیگران نداریم چاید از خیلی جهات حتی هم باشیم نسبت به دیگران این هویتی که برای ما پدید آمده یه مسئولیت بزرگی روی دوش ما گذاشته این مسئولیت هم از فرهنگ شیعیه فرهنگ خدا و پیغمبر و اهل بیت اه این نیازمند کار فراوان ماست یعنی خیلی نیاز داریم به اینکه اینجا خودمون رو بسازیم و این دانش و فرهنگ و پاسداری از این معارف رو سرلوحه کار خودمون قرار بدیم ما حتی اگه مثلا کامپیوتر نداشته باشه از خارج وارد می‌کنیم مهندس کامپیوترم هم ندیشه باشه باید میشه درستش کرد. پالایشگاهمون همه اصل صنعت تکنولوژیش خارجی بقیه چدارم از خارج وارد پزشکیمون هم اینطوری یعنی از جهت دانشی توی موارد متفاوت خیلی خود بنیاد نیست نگاهمون به اون طرفه یه بار میگن مثلا این دارو رو مصرف کنید پزشکی ما هم همین بیا همین دارو رو مصرف خانید. می ساختمان اینطوری بسازه ما اینطوری می‌سازه بعد نظرشون عوض میشه یه چیز دیگه میگن خب نظر اینا عوض میشه یعنی مصرف کننده ایم توی دانش و تکنولوژی و اما توی بحث معرفت فرهنگشی فرهنگ ما دیگه نمیتونیم مصرف کننده باشیم باید تولید کننده باشه یعنی این یه دانشی نیست یه معرفتی نیست که از یه جای دیگه بتونیم بگیری متکی به خودمون باید باشیم ا ا مرحوم آقای طاهر خدا رحمتش کنه اون اوایل قدیم ترا بود از دنیا رفت نماینده توی خبرگان اول به نظر نماینده قم بود ایشون استلای داشت میگفت که ما اگه مهندس نداشته باشیم از اتریش وارد مخالفن اتریش هم میونه این هم کشور پیدا کرده بود بعد اتریش میتونیم وارد کنیم اون موقع پزشک پاکستانی و هندی تو ایران مثلا قم زیاد بود اون مثل این دکتر کیام داری رو وارد ولی آخوندشی یکی هم داشته باشیم یا نداشته باشیم کنیم؟ جای دیگه ای نداریم بنابراین باید خودمون تولید کنیم نه خودمون اکه باید تولید کنیم باید واقعا کسی باشه که بتونه پاسخوی نسل امروز باشه که این فرهنگ و معارف قرآن و سنت رو منتقل کنه به این نسل جدید شبه ها تینا رو پاسخ بده درسته که وظیفه حراست از دین و فرهنگ رو خدای تبارک و تعالی به عهده گرفته ولی ما ابزارهایی هستیم بنابراین وظیفه نسل قدیم ما، اساتید ما، ما، شما، نسل آینده ما اینه که این کار رو درست انجام بگیم بس بقیه موارد هر هم نخص داشته باشیم قابل چشم هست یا میشه به گونه دیگه تحمیلش کرد ولی این یکی دیگه مخصوص به خودمون حالا که تکلیف ما وظیفه ما تبیین و ترویج معارف شیعی شد اولین پوسشنه که خب معارف شیعی چیه؟ معارف دینی چیه؟ که من وظیفه دارم اونها رو تبگین کنم تحلیل کنم تعمیق ببخشم چه معرفت و معرفت اسلامیه یا معرفت شیعیه خب ما تنها معرفتی رو میتونیم معرفت اسلامی بدونیم که از قرآن و سنت نشعت گرفته باشه بس معرفت درست و غلط نیست بس معرفت دینیه معرفت اسلامی معرفتیه که مبتنی بر قرآن است و سنت حتی معرفت عقلی درست هم که باشه کاملا صحیح مطابق واقع بشه واقع نمایش کامل باشه یا معرفت مربوط به دانش های بشری اینها پسند اسلامی یا شیعی نمیگیرن اگه بخواد پسنده اسلامی و شیعی بگیره باید برگرده به کتاب و سنت پس ممکنه خیلی آموزوها باشه، های درستی باشه. ولی اسلامی نیست. اسلامی بودنش باید نشأت گرفته از قرآن و سنت باشه. پس معرفت دینی معرفتی است که مبتنی بر کتاب و سنته. معارف دیگر صحیح هستند، باشند. حجیت دارن داشته باشند. ولی معرفت دینی تلقی نمیشه. یعنی بین اون معارف صحیح معارف حجت معارف که میشه بهشه احتیرااج کرد با معرفت دینی اینجا فرق میذایم. الان مثلا این چی این جیمز ویب که فرستادن یه آگاهی ما رو از ککشان ها خیلی بیشتر کرده. و واقعا هم اثر داره توی زاویه دیده ما ولی اینا معرفت دینی تلقی نمیشه معرفت دینی بر میگرده به کتاب و سنت حالا اینجا این سوال پدید میاد که، نسل ما و نسل شما که مسئولیت خطیر حراست و حفاظت و تبیین و انتقال آموزه های اسلامی رو به دیگران لوحده داره وظیفه‌ش اینه که اینا رو تبلیغ کنه، ترویج کنه، دفاع کنه، بیاموزد، بیاموزاند این کارا رو باید انجام بده شبهات رو پاسخ بده چقدر خودش با این معارف آشناست با این معارف دین قرآن و چه مقدار آشناست این مقدار آشنایی سطح آشنایی شیه یه بار گستره آشنایی رو میگیریم یه بار عمق آشنایی رو و این چه مقدار معارف رو بلده و چه مقدار عمیق بلده که میخواد اینا رو منتقل کنه به عنوان آموزه اسلامی آموزه شیعی به دیگران این آموزه هم که میگیم فقه نیست فقط ها. فقه یه گوشه ای از آموزه‌های های دینه بسیار فراتر از دانش فقه فقه میاد روی احکام شرعی نظر میده حکم شعری رو بیان میکنه ولی آموزه‌های های دین خیلی گسترده است اعتقادات رو شامل میشه اخلاق و آداب اجتماعی و سیاست و تفسیر و تاریخ و سیره و سبک زندگی همه این ها اگر بخواهد اسلامی باشد باید برگیره به کتاب و سنت یه جز اشم دانش فقه یعنی احکام شرعی ولی خود مجموعه معارف اسلامی معارف دینی بسیار بسیار بسترده که همه ی معرفتی مرتبط با دنیا و آخرت رو که نازل به تکال، تکامل و تعالی روح ما شخصیت ما بنیه دینی ما رو براخته داره یعنی آموزه‌های های دینی که درست و تپیان بر اهل پتر مستقل قادر شده فقط برای مخاطبان دوره خودشون نبوده برای همه مردم اصرها و نصرها در جغرافی های بوده که انیتار کنفیق مستقل کتاب الله و این همه مردم رو شامل میشه پس بنابراین همونطوری که قرآن و سنت فرافق هستند معارف دینی هم فرافق هستند خب ما چقدر این معارف رو میشناسیم؟ قرآن رو سنت رو حالا یه بار مثلا گروه چندتای خودمون که حالا شما یه خود تمرکز بر حدیث هم دارید یا قرآن رو بر آخر بعد از دورا می‌یادیم مقداری کار بکنم و بونگه عمومی حبزه ما به عنوان مهمترین حبزه شیعی چقدره؟ یه نکته رو مرحوم فخر محققین در کتاب ایضاح بیان کرده من خودم وقت نمیخوندم اصلا ناامید شدیم از خودمون با این سخنی که ایشون میگه مرحوم فخر المحققین در اواخر کتاب ایزا هل پواید شرح مشکلات قواید که شرح, شرح قواید علامه است یه <تصفح> فرع فقی راجع به دیهی عاقله مطرح میکنه یه روایتی میاره اون روایت رو میاره بعد میگه که مصنف یعنی مرکم پدرشون میگه مصنف این روایت رو در قواید آورده در مختلف هم به نظر آورده میگه در اونجا چون که روی روایت ابن فضال هست در اونجا حکمه به صحت روایت کرده در اینجا حکمه به ضعف روایت کرده یعنی دو تا حرف داره اما فرق مختلف اجل فی موثق حالا این متنشو بخونم میگه ثم اینو میگه میگه پس پس علامه دو تا نظر داره میگه ثم لما غرعت و علیه تحذیب فلمرت سانیه فی طریق الهجاز سنه سلاس و اشرین و سب میگه در سال 723 که در حال مسافرت در طریق هجاز که من برای بار دوم تحذیب رو خدمت ایشون میخوندم کتاب تحذیب و لحقان. سهر تو آن حاضر رو به این روایت رسن پرسیدم ازش که چرا شما دو تا نظر دادید کدوم نظر نظره گفت که ایشون گفت که نه این نظر اینجام درسته و این روایت ضعیف حالا تمدد کنید مرحوم فخر مؤکل مشهوری میان قبل بلو بلوغ مجتهد بود سال 682 هم به دنیا اومده پس اشعادش میشه چه سالی حدودا ها 6ش 95 بزار. چه سالی میگه اینو تحصسیب خوندم پیش پدرشون سال ۷ و۲ و, بیست و سه. یعنی 27 سال، 28 سال از اعتادش گذشته بود. تازه دفعه بار دوم نباره او یعنی یه بار تظب به خونده بوده؟ بار دوم کجا؟ تو سفر حجاز ما الان با هواپیمان که مسافرت میکنیم این سفر یه کلن آدم خیالش راحته که در اینا نیست دیگه تو سفر حجاز با شطور با این سختی ها بار دوم دارش تحضیب رو پیشنیم در حدی هم بوده که یه از اجتهادش هم نزدیک به 25 سی سال هم بوده داره تحضیب رو میخونه مرحومه مدرس نوری آخر مصداق این رو میاره بعد میگه که اگه وضع اینا بوده که کار ما زاره حالا خود مرحوم مدرس نوری خیلی روایت خنده بوده یعنی واقعا احاطهش به روایات بی‌نظیره شاید از محدود افرادیه که حافظه روایی انقدر سری داره اگه اون کار زار باشه اون وقت وضعیت ما چه گونه؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من یه سوالیه این سوال رو از حدوداً از سال 1385 تا الان میشه چند سال 17 سال تو هر جمع طلبه ای که میبینم می‌کردن این سوال رو تا حالا از 7800 نفر از طلبه‌ها پرسیدم در طول این 17 سال شما میشه چند تا دو گوشه ها روشی شد حدودا 25 شد میشه 7800 نفر یعنی بعدیه میگم من از 7800 و نفر این سوال رو پرسیدم سوال اینه که کتاب تحصیبی حالا یه خود و تخصصی کتاب کافی که مهمترین کتاب حدیثی ماست میراس فرهنگ حدیثی شیعه هست میراس مدرسه حدیثی قومه در دوره غیبت سغرا نوشته شده مؤلفش هم از اجلاء علمای ماست مهمترین کتاب حدیثی و افتخار حدیث شیعه هم هست حدود پونسد تا روایتش تا معصوم سه واسطه خورده سلاسیات پولینیه اصول و فروع و هم داره تو فروعش هم فقط مختصر احکام شعری نیست اصلا مثل تحصیب نیست که اختصاصا فقط به احکام بپرداده نه معارف حدیثیش خیلی گسترده تر از اونه ظرافت های فراوان معرفتی درش هست الان شما بزرگواران و همه ی کتاب کافی و اول تا آخرش رو خوندی اصول نه اصول و فروع و روزه نه خیلی مهم نیست دار چون که من از هفت هزار و هکست نفر قبلی که پرسیدم کلن شیش نفر خونده بودن همش شون یعنی یک هزارم کمتر از یک هزارم تازه از این شیش نفرم دوتاشون اخباری بودن که اینا اگه خوندن بهتر بود خب این از فقر و اینا بدتر قهدی هستن یعنی اینکه که حالا مثلا توی دوستان من اینا که نزدیک همونه هستن من چرا میتونم 10 نفر 15 نفر رام ببرم که بیش از یک بار حتی کتاب شریف کافی و خوندن کتابای دیگه رو خوندن ولی محیط عمومی طلبه ها اصلا هیچ آشنایی ندارن خب این ابزار دست ماست یعنی مثلا یه مکانیکی یه نجاری که تیشر رو ندونه آره رو نشناسه اینطوری چیزیه انقدر واسه خرابه ما گفتیم هویتمون فقط بن‌گربه این که مردم تصورشون اینه که ما قرآن و حدیث بلدی اینا رو می‌خوای منتقل کنیم و از آقا زبط میشه نمیشه خیلی چیزا رو اگه این چیزا رو تصور نبود موزر به هیچ خواهی نمیخوردی این باید مثلا, مثلا عملیگی هم از اون بر نمی اومد این به نظرم فاجعه است و این باید به گونه جبران بشه بقیه اینطوری نیستن من سال نوید یک یه تو هفته ای افغانستان بودم برای آفوندای سننی و شیعه فخر حدیث میگفتن همه موردوی بودن موردوی از این ریش بلنده های خیلی پاکلات بودن آدمای خوبی هم بودن خیلی علاقه من بودن به ما من همین سوالو رو توی این جمع شیعه و سننی ازشون پرسیدم گفتیم شیعه ها رو گفتیم کافی سننی ها رو گفتیم بخاری اینا همشون بخاری خونده بودن بدون اساس. فهمید که چارلمونستان چی؟ شما خود یه موشک درد و ما فهم می‌خواد. همه‌شون بخاری خونده بودن بخاری و چارلم خونده بودن آه. یعنی بخاری خونده بودن اشقالات چی خونده بودن؟ پاسخ به هم خونده بوده. وقت تو این جمع دوازده نفر بودن که حافظ صیعه بخاری بودن این 28 نفر ها نفر هاشون ما تو شیه ها یه دونه داشتیم حافظ قرآن بود هم مشترک بود چه اونایی با هم بودن یه دونه داشتیم حافظ قرآن بود اونم حافظ قرآن بود. اینا آره نه اینا آره 12 تا حافظ قرآن بودن 8 تا حافظ سعی قرآن و سعی بخاری بودن پنج تا حافظ قرآن و سعی بخاری و سعی مسلم بودن ولی همهشون شون تا سنی همه شون سعی بخاری خونده بود بدون استسما حالا دوره تحصیلشون هم خیلی طولانی نبود مثلا به نظرم می گفتن که دوره اولیتشون چهار سال و اینا ولی تو اون چهار سال هم مرور بر بخاری رو دارن <تصفيق> یکی از این قایمون گفتون که کلاس دیگه بود با ما کلاس نداشت گفتن که ایشون دوره ختم بخاری داره اومد توضیح هم دور خیلی دوره یعنی از پیشرفته بود و از حت سیستم و متدولوژی میگم یعنی روش کاملا فنی بود دعوتمون کرد اون سال سال 90 و دو گفت که این ختم بخاریمون توی حرات برگزار میشه حرات هم که نزدیکتونه بیاید اونجا که خب ما نترسیم بریم و بعدش هم که دیگه خیلی دور شدیم از اون فضا ما اگه کسی حالا بخاری خونده باشه اصلا کتاب بخاری خواب قیاس با کتاب کافی نیست خیلی یه چیز درهمیه ولی نه و مسلط هم هستن یعنی اون متن حدیثیشون رو واقعا بلدم خب حالا وقتی کافی وضعیتش اینگونه دیگه کتابای تا وای دیگه خیلی روشنه دیگه, دیگه حالا یه سال سازه هم بگیم نه جلبل آخر کدوماتون همش کنو دید همش ها نه مراجعه نمیان یعنی یه بار بیایید از اول تا آخر بخون یه نفر دو دست ها؟ الان توی این همین چیزی که گفتم از این 7800 نفر که پرسیده هم خود بوده 3 درصد طلبه ها میگن ما نهشال بلاغه رو خوندیم چی؟ نهشال بلاغه رو؟ نه نه هیچ کدوم نخونده گفتم که شیعه هیچ کدوم نخونده بودن ها همشون خونده بودن یعنی بدون استثنا البته شیه خودش خودشت جوانتر بودن ها؟ نه نه این سال این مثلا اول که میخوایم من, من یه شیه بودم اینا همه سندی بودن همه مولوی بودن باید یه طوری یخ بشکنه مثلا میخوایم به یکی میم ریشت بلنده یکی میم ریشتو خوب رنگ کردی یه میخوایم فضا درست بشه اول کار باید یه طوری باشه دوستانه بشه را این سوال رو بحثی کردم. تایمش کینی میفرمودن که ما اون هوایل طلبگی تابستون‌ها یه بار نحصل بلاغه رو میخوندیم کامل به خاطری که ادبیاتمون قوی بشه یعنی به عنوان ادبیات اصلاً بلاغه رو بین سنيام اقبال و که به این کتاب هست بیشتر به ادبیاتش یعنی با ادبیات شروع میشه بعد عربا که میان بعد تحت تاثیر مزامین مرحله بعده این آقای جورج مسیحی بود یه حدود 10 سال پیش ده سال پیش از دنیا رفت یه مصاحبه ای داره سال 2003 اون موقع میگه که 2003 میلادی میگه من تا الان دیویس بار نشور براغه رو خوندن <تصفيق> یا ابن عبل حدید توی اون زیله خود به و بیس و میگه در این پنجاق سال پنجاق سالی که یعنی کار علمی میکنه من بیش از هزار بار این خطبه رو خوندن. و هر بار هم یه نکته جدید یه مطلب جدید یاد گرفتم نه که خوندن نه که حراعت نگونه ما خیلی سخت نمیگیریم که مطلب جدید خونده باشید یا یاد گرفته باشید واقعا مثلا یک دور حالا قرآن رو خدا توفیق داده مثلا معمولا طلبه ها و غیر طلبه ها ختم قرآن تو موارمزان اقلید یه بار میکنن آدیو ساده شد ولی میراش حدیثی من خیلی مقفوله این اصل مشکل حالا چرا این مشکل پدید اومده؟ معمولا وقتی میگن که آقا مدیریت حوزه مثلا این همین که گفتید برنامه نیست برنامه برنامه برنامه نمیذارن چپار البته اونا مغصرن من هم این همیه. این روزهی که برای شما خوندم خلاصه شو. هم برای آقای حسین بوشهر موقعی که مدیر بود خوندم برای عرافی یعنی اصل این چیز رو خوندم حالا آقای عرافی که از اون موقعی که بودن یعنی واقعا هم خیلی دوست داره که به کوندهی مثلا این مشکل کم بشه اما به نظرم مشکل اصلی مودی. اون جز الالله هست مشکل اصلی و احساس بی که ما نسبت به این معارف داریم اون احساس نیازه نیست و الا تو همین حوضه ای که داریم آقای رضا هم میاد اینجا دیگه شما متوجه بود آقای رضا قلی بتول کافی رو به نظرم 33 بار 32 بار یا 33 بار تلافی کرده خود کافی رو کلش رو دو بار کرده هم جوون دیگه مثلا 20 شیش سالش بیشتر نیست یا بهار رو الان دیگه احتمالا اواخرش یا برخ از این دوستان ما که میبینیم اینا مقیدن مثلا که این مطالب رو بخونن خب معمولا یه بار دو بار سطحی میخونن بعد امیق میخونن بعد خیلی امیقتر میخونن روز جمعه مهمونی ما داشتیم میگو که من اول سال که لازی رو شروع کردم روایت اول کتاب الحجره رو شروع کردم هنوز تموم نشد <تصفيق> هنوز مونده یعنی خلی میگفت که سعی میکنم تا آخر سال تموم بشه یه یعنی جایی ور تلاش همینه این احساس بنیادین نسبت به حدیث دانی حدیث خانی اینها وقتی که در وجود انسان باشه خب طبیعی طرفش هم نره. چطوری شما همتون با این گوشی های گوشمن بلدید کار کنید؟ چطوری تو فضای مجازی حضور دارید؟ حالا اینم که عوض میشه با همون زرافتاش معمولا یه فضایی جدید یاد میگیرید. با اون... حالا اگه اینستاگرام با تلگرام هم دو میکنید رو یاد میگیرید. یعنی احساس نیاز می‌کنید اینجا. ولی من احساس نیاز به حدیث خانی در من حضورت نداره. و به نظر میرسه که مجموعه ما یعنی هم مدیریت حوض هم اساتید ما و هم خود ما اینجا مقصریم یعنی قاصر ما که روز قیامت به عنوان بودن خدا ما نکنه نه مقصریم یعنی اگه روز قیامت خدای تولیفت حالا این پرتش رو از ما بپرسه که من بیشترین امکاناتی که میشد در طول تاریخ بشر تا این روزگار من در اختیار شما قرار دادم یعنی امکانات که الان در اختیار ما هست در طول دارم. در اختیار هیچ کسی نبود شما چی کار کردید؟ چقدر استفاده کردید؟ و من میخوام به خاطر اینکه همه امکانات در اختیار شما بوده عذابتون کنم ما چی بگیم باید؟ مرحوم آقای غفاری مادر احمد رشکانه یه اومده بود خم موقع تازه مثلا کامپیوتر و این چیزا اومده بود و این برنامه های افزاری که کتاب ها رو داره خیلی مثلا دلوه داشت حالا آقای غفاره از اون آدمایی بود که مثلا سالی که میگه سال هفتاد و پنج ایشون سال سی و پنج کافی رو تحصیح کرده یعنی چل سال از اون گذشته بود اومده بود دارال حدیث نشسته بود بعدشون می گفت که من موقعی که محجت البعیزار رو تصنیم می خیلی دنبال کتاب مجمع و زباید بودن همه ی ای ایران گشتم این کتاب پیدانه بعدی بعد یه خاطره تعریف می کرد که رفتم صبح به رفتم رفتم خیلی مورد ارادت داشت به مرحوم شیخ صدو صبح اصلا صبحانه نه نخوره رفتم اونجا و شیخ گفتن که ما داریم به کارا نش نشه صدوق بود بودیم کارا رو می‌کنیم این یه طوریه که می‌گم وقتی اومدم داشتم میرفتم توی جمعه یه بازاری روز جمعه اومده بود تو واژه شمعل صدا زد و یه سری کتاب برام اومده مثلا بیا, بیا رفتن دیدیم که حجم ازاوای اونجا هست خیلی اینو کرامت شیخ صدوق میدونه خب ما از موقع که قاسم کار بکنیم مدنوز در برنامه نروستوری بود اصلا دیده بودیم احساس نمی‌کردیم این خیلی کار بعد مرهم بعد آقای شهرستانی ذریانه از در مقام علامه امینی نال کردن روی کتاب ربیول ابرار که اون خیلی مفصل حالا توی فضای مجازی محترمرا هست. که مثلا برای اینکه یه کتاب به دنس بیاره چی کار میکرده یعنی خودشو به آب و آتش که این ربیول ابرار که توان کتاب به در بخوری هم نیست، آورده. خب یه چند تا بعد اون فضیلت‌های درش هست. برای حق قادر یا اون مسالب معاویه درش هست خب الان همه منابع در اختیار شما هست مرحوم سید نموت الله جزائری توی همون زندگی نامه خودنوشت خودش داره دیگه میگه که خب اینا میگه من شب چراغ نبود پولم نداشتم چراغ بخرم روغن بخرم در روغن روغن, روغن بعد میتونم را نمیدونم شما چراغ پی‌سوس دیدی؟ دیدید ندیدید اصلا من دیدم چراغ پی‌سوس مثلا حدودا اگه اینجا بذاری حدود 20 سانتش رو روشن می‌کنه بیشتر نور نداره یعنی غیر این چراغ نفتیه که اون وقت میگه ناشور می‌شد مثلا وقتی که ماه زیاد بود زیر نور ماه مطالعه و همه خاطر چشمم هم چی شد و حالا بعد مفصل تعریف می‌کنه که یعنی علامه مدرسه رحمت الله علیه که انقدر کتاب بهار رو نوشته و کار کرده و حدودا دو تا نسخه از این کتاب به خط خودش هست. یعنی 110 سال دو تا نسخه به خط خودش داره. ایشون شب که تاریک می‌شده دیگه واقعا چیزی نداشتن یعنی بعد روز کار می‌کردن. شب با اون نور و امکانات و امکانات نوشتن و اینها خیلی دشوار بوده اون سرما گرما عدم امنیت مرخم ساحبتهایی دو بار کل زندگیش خارت شد یعنی همه هست هستی کلن ساخت شده دوباره برداشته روز از اون روزی از انا شروع کرد خب شما الان شب از روز آدم راحتتر تر سختتر نیست نور و امخانات و تحریه و سرما و گرما و امنیت و کتاب و ابزار و اینها اینه که در اختیار شما هست مرکم علامه مردیسی اصلا مخیرش خطور نمی‌کرد که که زمانه اینقدر امکانات باشه یا شیخ حساری خب حالا خدا این همه امکانات و داماته ما چقدر استفاده میکنید این مرحله اول حدیث و حدیثتانی یعنی ما از مطالعات اولی حدیثی فقیرین حالا این وقتی که تازه شروع کنیم یعنی مطالعات حدیثمون آغاز بشه یه حافظه ی حدیثی پیدا بکنیم اون موقع برای عمق بخشی به این مطالب باید خیلی کارای دیگه انجام بدیم در واقع مطالعات حدیث باید توی دو تا حوزه باشه یه بحث خود معارف حدیثه که نیمی از وقت ما رو باید بگیر یعنی بریم و این معارف رو بخونیم و مرحله به مرحله پیش بریم نکته دو دانش دانش‌های حدیثی که آن رو باید یاد بگیریم حالا اون بحث مفصل دیگه الان چندان فرصت نیست که بخوایم به آنها بپردازیم این که مثلا اگر کسی بخواد واقعا حدیث کار کنه باید اعتبار سنجی حدیث رو صاحب مبنا باشه درش یعنی صرف اینکه رجال یه دانش از دانش های اما مبانیش برای ما معلوم نیست یا به مبانی ما روشن نیست یا مبانی آقای متفاوته این کفایت نمی کن فقه الحدیث خود دانش فقه الحدیث مباحث فقه الحدیثی شیوه های فهم حدیث چگونه میتونیم به مراد محصوم علیه السلام دست پیدا کنیم شیوه های حل اختلاف حدیث شیوه های حل مشکل الحدیث مباحث پیرامونی حدیث مثل تاریخ حدیث من شناسی، شبهات حدیثی خب اینا همه اینا دانشان که اینا باید کار بشه دیگه پس ما از یه طرف باید اون گستره مطالعات حدیثیمون رو خیلی زیاد کنیم. دومی که دانش‌های حدیثی رو هم باید یاد بگیریم که اون مطالعات حدیثیمون عمق پیدا کنه. یعنی صرفا این نباشه که حدیث میخوانیم گفتم این مولوی های سنی این که چهار لا بلد بودن چیز رو این سایه بخواده رو سعی بخار زیاد داره. سهی بخاری نه،, از نه نه نه سهی بخاری اون صح... صحیح میدونن مشکل یعنی اون مشکلی نداره از زیاده خوب وقتی وارد میشن این شبه ها مثلا اشخالات از قرن چهارم حتی بی مطرح کرده بعد اومدن جواب دادن بعد این جوابان نقد شده حالا شما اگه سر آقا فتخلواری برید کتاب فتخلواری فی شرخ سهی بخاری ابن هجر از خلانی ببینید که یک متن شست رفته مبتنی بر میراث حدیثی خودشون در شرح حدیث ارائه داده و خیلی واقعا توی شرح حدیث بینی نظیره ما معادلی توی کتاب های حدیثی شیعه مثل فتولباری نداریم هیچی ها. خب اینا همه در اختیارشون هست من خیلی از اینا توی همون چیدشون فتحولباری خونده بودن فتحولباری متن مشکلیه متنش هم, هم هست که واقعا کلمه به کلمه تخصصی نوشته شده یعنی اینطوری نیست که سریع بشه ازش بگذاری خب ولی ما نه حالا تازه اون گفتم اون شش نفری هم که بخار... کافی خونده بودن دوتاشون اخباری آب در اومده بودن یعنی قایل به تعریف قرآن بودن دوت کار میکردم دوچی اگر بخواهیم حدیث بخوانیم عمیق هم بخوانیم شایستهم بخانیم این نیاز به کار فراوان داره یه نکته در نظر بگیرید این کمکاری ما یعنی مجموعه تلبه ها در حالیه که بیگانگان و معاندان اونا خیلی صف دارن کار یعنی واقعا متمرکز دارن کار نمیکنن نمیدونم شما آثار اتان کلبرگ دیدید یا ندیدید اتان کلبرگ یک دانشمند یهودی صهیونیست هست تو اسرائیل الان دیگه خیلی پیر شده حتی نسخه خطیای ما رو دیده ها اتان کلبرگ مثل گلبرگ اون اولیش که <تصفيق> <تصفيق> یه چند وقت بیشا تنازم پاسال بود خدمت آقای مددی بودیم مخ... یه شاگر نمازاش نیم قبلا پاکستانی بود توی ایران بود درست بخون الان انگلستانه آقای کمیل کمیل راجانی خب با ما ارتباط داشت با آقای مددی هم ارتباط داره یعنی چیز داشت آقای مددی می گفتن کمیل اومده بود اینجا می گفت که اتان, اتان کولبرگ داور پایان نامه من توی انگلستان وقتی فهمید من قوم بودم گفت سلام به آقای مددی برسونید من نوارای ایشون رو گوش دادم. <تصفيق> حالا نوارای آقای مددی حدودن 150 تا نوار داره راجع به میراس حدیثی شیه میراث مکتوب شیه که واقعا مجموعه بی رو و خنی یعنی خیلی پر اطلاعاته کولبرگ هم روی میراث مکتوب یه خیلی کار کرده یعنی آی مددی این حرفو ایناش گفت معلومه که یه سر و گردن از کولبرگ بالاتره اون وقت اونجا این نوارا رو بعید میدونن تو کل حوده قم صد نفر گوش شده باشن مثلا شما به گوشتون بودین در لفات میراث مکتوب آقای مددی رو اما اون میگه که گفته سلام برس من ما خوندن بس یقه کرد. <تصفيق> الان مثلا توی فضای مستشرقان حالا مستشرقان چه غربی باشند یا اینکه نه اینایی که مثل آقای امیر ماهزوی که در واقع ایرانی زادن ولی تفکرشون تفکر همون مستشقانه تمرکز روی میراث هجیسی شیعه و مشکیری و اشغال و نقد و نقض و اینها خیلی زیاده و ما اصلا خبر نداریم از این چیزم یعنی اصلا توی فضای دیگری داریم سیر میخوانیم اون غربی اونا که میان مطالعه میکنن حدیث خانیشون برای یادگیری نیست برای این نیست نیست یه امام چی فرموده برای نیست که معرفتشون زیاد کنن اونا وظیفش اینه که رو بخونه ایراد بگیره یعنی اگه یه تنفل بگیه سخیونست خوبی هم باشه که بعد پولی که میدن حلال باشه دیگه این وظیفه چینه که بیادینا رو بخونه و بتونه مثلا هویت فرهنگ شیعی رو به دست بیاره که بالاخره به عنوان دشمن و دشمن هموندیه بتونه ما رو تحلیل کنه بتونه روحیات ما رو تحلیل کنه بتونه به ما ضربه بزن بتونه ما رو بشناسه یعنی اون مطالعاتش مطالعات دینی درون دینی یا درون مذهبی نیست از بیرون نگاه میکنه برای این کارا خب این نگاهش موظف به یادگیریه ولی بیشتر از معمول آخونده ما حدیث خوند. یا آقای بود قومیم بود. مرد به نظر یک دو چند ساله پیش. آقای شفا. اسمش رو شاید چندیده باشه. شجادن شفا این پدرش از اون حکیمای قدیم قوم بوده روبروی این درب حرم تو مسی تو ارم متبش بوده مثلا تا چند سال پیش کاشی های اون چیز بود که بعد حالا منتقل کردن توی موزه یه شعری هم داشت اونجا موقع بود که دوا اینجا شفا اونجا و اینا ایشو جان شفا قمیه و قومی زاده است اما بسیار ضد دینه زمان شاه رئیس اون بنیاد پهلوی بود خیلی جوانم بود اون موقع. یعنی سنش زیاد نبود ولی واقعا از درده چیز کار میکرد خب انقلاب که شد اینا دیگه همه بحشاتشون به هم ریخت دیگه وقت این حالا زده دین بود حالا دیگه دنیاش هم حتی رفته بود این که چقدر داغ میکنه توی فرانسه بود دوان فرانساش خوبه یعنی اصلا به فرانسوی خیلی مطلعه بشون می نوشت یک کتابی داره دو جلد کتابه از کلینی تا خمینی عنوان شده از کلینی تا خمینی همه منابع حدیثی ما منابع مرتبط با حدیث منابعی که حتی حدیث توش هست ولی حدیثی نیست ولی حدیث توش هست همه رو خونده 400 جلد کتاب خودش میگه تو اونجا می میر چهار کتاب کنده وقت به قول خودش این اون ایرادا و اشتباه ها و اشکالات در روزه شده دو جل دو جل از کنه این تا خواهی هست که یه فضایی مجلزی هم برید احتمالا رانم باش که الان اه... وقت نگاه میکنیم اونی که نه اشکالاش هم اینقدر مثلا از این دو جل یه جلدش اشکالش بی خودوی یه جلد اما اشکال داشته باشه میشه یک دیویستوم یک دیویستوم که اصلا اشکال مطر از 400 جلد کتاب یک جلد کتاب ایراد گرفته ولی ایرادش هم وارد هار نگه این وارد نیست. اما بیشتر میخواد خوشیگری کنه ولی اون به خاطر همون انادش با فرهنگ شیعی با اسلام اومده همه ی کتاب های حدیثی ما رو خونده ما که وظیفمون اینه یعنی اون وظیفه ای نداشتن با خاطر دنیاش این کارو میکردیم. ما که وظیفمون اینه می‌بینیم که تو جامعه علمی ما یک 1000 هم کتاب کافی رو نخوندن در حالی که وظیفه و تکلیفشون اینه این باید یه طوری مشکل حل بشه راه کاره را شما چیزتان ریشهی مشکلت کجام دید ریشهی بی نیازی را چجوری حق بای نیازی این وضایی که اجاز شده تو حوزه مثلا این اخباری جری راه کار نداری بوده راه صحیح چقدر؟ ما داین الان باز شده که هر کسی میخواد یه حریث ما ها خود من مثلا امادیش مفیی داشتن می خون ن و بری داشت میکنیم این داشتی میکنیم. یه مدیری داشتی میشون با مااض باش اخباری نشین. با یه علی نجر و برغست دیگه خیلی چیز تجیی نیست و بعد هم تکری تو حضه باشه و دامنی اقاب بشه از اساتی مطبیات کنیم خود اساتید ما بزرگان ما اون کرده بده های خودت میمثلن و راجع ما ق. میکن در این میکنه میبود که مراجع بودن شما یه بار بهار رو خوندی گفت نخوندم و بعد این فضا فضای زرد حدیثی تو حوزه باشه آنها شما یه دفعه اومد برو حدیث بخونه میبیساد کسی فی خود فی خودش نخونه دست ان تلفیم اون حدیث چی تفسیر نه نه تفسیر نیست فقط فقط اصول و همچین تفکر که تو حوزه باشه ازش کافی بهار نه من که اعتقال از اینا یه میگن فی باید خیلی خوب بخونه یعنی این کسی ما کار کنه باید فی وصولش در حد اجتحاد باشه یعنی هیچ کاخون رو از دست نده اما اینا ناف هم نیه میگن مصبته که متعارض نیستن یک نامه هست آقای حسین جلالی اونو چاپش کرده با عنوان الاحادیس المقلوبه وقتی مرحوم ابو برزدی اون به مرجعیت رسیدن اونجا اینطوریه یه نامه‌ای از نجف براشون اومد خب مرحوم ابو برزدی از جهت فقه و چهره شاخصی بودن یعنی متشخص یعنی کاملا معلوم بود که چی چی هستند. اه چندان بدیل و رقیبی هم نداشتند خیلی اونا حالا اومدن یه سوال کردن دوازده سوال ازشون پرسیدن اصل متن به زبان فارسیه این یعنی سوالات و جواب‌ها 12 سوال حدیثی پرسیدن که اینا رو جواب بدید این احادیث هم سندش هم متنش همش متشدده یعنی دستوش بردن و عمدن و اینکه چیز کنند یعنی هم اسناد رو و هم رو و معمولا هم نیاز به یه فقه و حدیث جوندار داره به این راحتی نمیشه حلش کرد که اینو جواب بدید ایشون حالا ظاهرا دو تا نامه دادن اون موقع یه نامه برای ایشون دادن یه نامه برای مرحوم آقای حجت آقای حجت هم اون موقع وجود بود آقای حجت به این بهونه که اینا شما دست تو حدیث بردید و تصیف کردید و اینا این جواب نت... نامه را رد کرده آقای برویدی جواب دادن حالا جواب سوال و جواب آقای برویدی الان هست ام. که اینه که آقای حسینی جلالی به عنوان تعریبش کرده به عربی چاپ کرده ولی مده هستی فارسی هم هست الان حادی سال یعنی اگه میخواستن میگه که شما که به عنوان زعیم جهان اسلام مزرحیف فیخ و که خب ما میدونیم چه زوره فیخ و رافون بودی جوان که بودی فقیه اصولی بودی ولی اگه بخوای ز داشته باشه باید این نارم بلد باشه این سوالات رو پرسیدن و ایشون هم جواب داشته من جواب داده یعنی واقعا این بردو که مجموع سوال و جوابو اگه بخواید کسی بنویسه به نظرم شاید دو سه ورق بیشتر نمیشه اما اینقدر این دقیق و ذریفه که ایتواد بفهمه باید یه چند وقتی کار بکنه که اصلا چی میگه؟ چون خیلی سوالات دقیق انتخاب شده یعنی تغییر و تبدیل که تو سوال اومده بسیار ذریفه و ایشون رو پاسفه این که حالا چه کار باید کرد؟ یه بار اینه که ما بخواییم کل هویت و حوضه و این حال بخواییم چه کار کنه؟ و اصلا در حیطه ما نیست یعنی ما که تصمیم گیرنده نیستیم که به این کار رو انجام بدیم ولی اختیار خودمون رو که داریم یعنی بیاییم خودمون م... یه کاری رو شروع بکنیم توی جمعهای مثلا دو سه نفره جمعهای کوچیک اما بنامون رو بر این بذاریم که واقعا یکی دو ساعت از وقتمون رو و فکرمون رو اختصاص بدیم به منبع معرفت نه دانش های خوزبی الان فقه و اصول و پلسفه و همه اینا اینو حتی علوم حدیث و علوم قرآن اینا میشن دانش ها من علومان هرم نفل نمی کنم ها. یعنی رو باید بخونم ولی همه این دانش ها مپتنیه برینه که معارف قرآن و سنت رو شما بتوند کار کنید، چه حکم فقی بخواید در بیارید چه اصل اخلاقی بخواید در بیارید چه با حال نظریه تمدنی بدید همه اینا اگه بخواد اسلامی باشه باید بردگرده به قرآن و سنت اگه بخواد به قرآن و سنت برگرده باید اینا رو بخونیم حالا اینا که میخوایم بخونیم به نظرم اگه من نمیگم مثل مرحوم فخر این که 27 سال بعد از اجتهادش تازه هنود داره تحضیب رو استادش میخونه البته استاد هم هلی بوده یعنی استاد کمی نبوده یا استاد شاخصی بوده داره میخونه ما الان خیلی زود مستقنی میشیم حالا مثلا توی حالا البته الان که شما خیلی اون چیزی نمی مثلا زمان ما این گونه بود آیتو لشو بیری زنجانی هم حدیثش خیلی قویه و فقه و هم که واقعا خوبه یعنی بینظیره همین که خیلی در دست یعنی حالا اون الان دیالا حالا خب یه خود پیرمرد شدن و اینها چرا انقدر چیز نباشه چی؟ هفته جلسه آره رفتیم یه چند وقت پیش به خدمت ایشون نه اون شادابی علمیه نیست یه دیگه سن متفاوته با چیز ما که آقای شری زنده بودن سادی یه بار می دیدن علما یه دیدار خصوصی مثلا سه چهار نفر من بودم آقای شری دیدار مسعودی معمولا سه نفر ما اخیه بار آقای رشده از آقای شوبری پسیدن که شنیدم که شما فقه تون رو تعطیل کردید. اصول شروع کردید. به نظرم سال 93 و 4 این کار کردنیه کردن بار. ایشون گوه که آره من کتاب کنم تو زیر زمینه برای هر جلسه یه فقه هفت ساعت کار میکنم. الان دیگه توی اون رو نفس هم میگیری. یه نمیشه در نتیجه ت... اصول مگو با دو میشه خیلی کار سخت ولی بلیه خیلی سخت یه کتاب کافی داره ایشون این کتاب کافی ایشون دیدنیه من دیدم آقای شوهی رو آقای شوهی این کتاب کافی من هم آقای با هشت تا نسخه خدی مقابله کرده هر سال که می مشهد می رفتن کتاب کنه آسان نقص خوب آقا دادن بوده دیگه متشخص بوده می تونسته نسخه خطی بهش می حالا من نمیدم شما که با نسخه خطی ندیدید. دیدی؟ مقابل با نسخه خطی بسیار بسیار کار پر زحمتی. وقتیشون کتاب مرخوم آقای غفاری و تسیه آقای غفاری رو در هشت سال متوالی هر سال تا کتاب کافی شد. با یه نسطه مقابلی کرد. مقابلی یعنی اینو باید دقیق بخونیم اونم دقیق بخونیم تفاوتاشو بریزیم اون وقت با هشت رنگ متفاوت کنارش نوشته کنار کتابش هست مثلا آبی داره قرمز داره نویس داره سبز داره خود سبزش من نظرم دو مودله اینطوری که حالا تو زهنمه یعنی به عنوان اینکه من حالا دارم نسخم رو میکنم اما این نسخه تحصیل کردن باید کل مزر رو یه بار از اینجا بخونی یه بار از یعنی دو بار باید کافیل ترابیس رو بخونی اون وقت تفاقاتار هم بکنی تفاقاتار کنار اینجا یادداشت کنی توی کافی که دارون حدیث تحصیل میکنن اشون نسخه خودشون دادن اینا برداشت عکس رنگی ازش گرفتن که رنگا معلوم باشه که منظور هر رنگی مال یه نسخه است متمایز از نسخه های دیگه باشه خب ایشون همون محصول حوزه است یعنی چیز خاصی نیست و اینکه فقط نه اینکه فقط به خانی ها اینکه هشت بار با نسخه خطی مقابله کنی شما الان وقتی که مقایسه مطموم میخواید بدید تو برنامه نور میدید میگه مشابه ها رو بیار چی اون خودش میاد رنگی میکنه متفاق تفاوت ها رو برات میگه یا خیلی راحت تر میتونید کار انجام بدید خب کارا خیلی سریع تر و راحتتر شده ولی بازم استفاده چندان از این ابزارها ها ما خب گفتیم که حالا فعلا برای مدیریت نمیخوایم همه کارهای مشکلات جهان ازامل کنیم اما مشکل خودمون که میتونیم حل کنیم باید وقت بدون حالا این فرصتی که آقایون ایجاد کردن اینکه انسان بیاد متمرکز باشه حدیث بخواند این خوندنم مثلا چیز نشه توی همون سطح نمانه بتونه عمق ببخشه به کارش بعضی از این متونه حدیثی برخ از این علما رو آدم میخونه واقعا میفهمه که این آره همینطوری سرسری اومده یه گفته یا اینکه عمیق بوده یا اینکه اون قوه استنباط قوه فقه حدیثی اجتهاد فقه حدیثی رو آدم تمرین کنه درش پدید بیاد حالا ممکنه که با چند سال کار اون فقه اللغه خودش تخصصش اینکه جمعآوری خانواده ی حدیث خودش تخصص شیوه ها, روش روش‌های فهم حدیث اینا خودش تخصصه اینا رو باید کار بکنه آدم اینا رو یاد بگیره اما وقتی که به مرور زمان اینا رو یاد گرفت اون بنیه حافظه حدیث یعنی حدیث خانی و حدیث دانشم قوی شد این بیاد مثلا ده تا 20 تا 30 جا رو کار بکنه لازم نیست همه احادیث رو انقدر گسترده کار کنه کار واقعا ممکنه که اگه کسی بخواد روی حدیث واقعا وقت بذاره بخونه کار بکنه نیاز این باشه که تو مراحل اول مثلا دو هفته سه هفته متمرکز روی حدیث باشه و کار بکنه تا بتونه اینا رو انجام برسون ما یه ذخیره و گنجینه ی هم داریم که یعنی اون پرونده یه علیویت فهم پیشونیان ما رو خیلی میتونه ارتقاب ببخشه ما رو میتونه جلو ببره خب اینا میتونه به تقویته ما بی انجامن. البته اگه بتونیم یه کارهای مثلا سیستمی انجام بدیم یعنی اینکه مجموعه ما با هم همکاری کنن کارامو دقیقتر باشه یا سیستم مدیریت مدرسه بیاد این رو تسهیل کنه برای ما یا سیستم مدیریت حوزه بیاد این رو تسهیل کنه امتیاز بده بهش این شیبه مثلا اینکه الان الان مثلا آقای عراقی گفتن که آقا ما حدیث خانه رو میداریم تو حوزه ولی حدیث خانی که فرق میاد به خاطر اینکه که نمرش رو پاس بکنه حدیث بخونه این حدیث خانی نیست یعنی زواهر درست میشه ولی کار سامان پیدا نمیکنه این نیاز به کار کردن باید کار کرد با این وضعیت ما هم واقعا اوضاع اصف خب چگونه باید کار کرد؟ اینکه حالا حتی اون حلقه های دو سه نفره تشکیل بشه مجموعه های و مدارسی که قرآن و حدیث رو به عنوان اینکه که متمرکز بشن بخونن با هم بحث کنن گده های علمی داشته باشن اشخالات هم رو کنن هم دیگر رو نقد کنن ارتقا ببخشن آره این خیلی خوبه طبیعتاً مطالع مقدمه این کار دانش های حدیثی هم باید یاد گرفت البته اینجا الان من تمرکودم روی حدیث بود همه این مباید که برای حدیث گفتیم با تاکید بیشتر نسبت به قرآن هم هست اما قرآن خوبیش اینه که مرحله اول گذارونده یعنی که بلاخره ما با اون ریخت قرآن با معارف قرآن به صورت ابتدایی اولیه معمولاً آشنا هستیم ولی با حدیث این گونه نیست یعنی ممکنه یه سری مطالبی رو شما توی کافی بخونید مثلا فرشتگان نقاله که روح مؤمنین رو بعد از مرگ منتقل میکنن مثلا به گوش کسی هم نخورده یه مشکل دیگه ای هم هست یه حالا وقتا خیلی کداشت ببخشید اینه که ب... یک همکاری اینگونه که حالا توی محیط حوضه ما داریم یعنی این گوهرهای وزین و سمین و با ارزش رو به نداریم یه بدیلهای بیعرضشی ارزش شده که جامعه اونها رو اون وقت عنوان به عنوان سنت پذیرفته یعنی شما میبینید که الان اگه بخواد کار بکنید مثلا تمرخدتون روی کتاب کافی باشه میبینید کافی خانه با جامعه متدین ما اصلا هیچ رابطه ای نداره مجموعه عدیه کتاب کافی عدیه کتاب فقط دعاهاش به انداده یک جلد قطوره ما را دولار حدیث داریم جمعش میکنیم با اونان دعاهای کتاب کافی میخوایی منتشره معمول این دعاها رو مومنین نمیخواد معمولش ها اصلا هیچ رابطه باش نداره در حالی که مثلا شما بینید که توی کتاب هایی که ملغرن 11 و 12 هست خیلی دعاهایی هست که نه استناده کتاب کوهنداره نه مختبا به اون شایستگیه است ولی خب نه رواج پیدا کرده یعنی به مردم که اونا که حالا بیخوزه تلیان هستند دعای گنجل ارش ولدن دعای نمیدونم یه سری دعاها هست اصلا هیچ پیشینه ای نداره خیلی عجیبه ها که هیچ پیشینه ای از این غیر این چند نکاتی که همین توی این جوزوات منتشر میشه شما یک منبع نمیتونی براش پیدا بکن ولی مردم این رو بانوان دین پجروهتند مردم. اون مردم هم واقعا روی خلوط نیت ره. یعنی که این چه که، یعنی کمکاری ما باعث شده اون ای که تشنه معارف سنتم هست اونم به بیراهه بری اینا زردا بود خالا پس باید کار کرد خدا به شما توفیق داده که یه جمع قرآنی حدیثی کنار رو میخواد میخواید خوار کن. این واقعا توفیق الهی ها پاس داشته این اونه که ما هرچه بتونیم بیشتر زحمت بکشیم کار بکنیم به یه جایی برسیم خداوندش الله بهتون توفیق بده چقدر شد آره زمانش طولانی شد ببخشید حسان این باعثه که یه زحمت کشیده یه فضا بسره آماده کرده برای حدیثانی و قران و تفسیر شماها دلیل کمک کنین بواسطه فقل حدیثی بالا به نقد اتمام رو هر هفته یه جلسه ما تشکیل بیاریم ما استفاده کنیم یه تقیادت بشه که الان خودتون بزرگان دارید بدید یعنی باید کار بکنید حالا کاری که میخواید بکنید یعنی توی مراحل متفاوت من میگم توی همه زمینه های دانش های حدیسی نیاز من دویه نزده دانشی کار کنه نزده مهارتی هم کار بکنه ما الان مثلا توی مرحله اولیه میگیم که دارال حدیس توی این چند ساله توی این چهار پنج سال اخیر حدود 20 سلت کتاب راجع به دانش های حدیسی منتشر کرد اون دفعه گفتم برای شما به ها خب این بیستل الان مکتوبه وقت آموزشی هم نوشته شده یعنی بنابراین بوده که مخاطب یعنی نیازه به یه استاد ویژه هم نداره تا در میونه اصادت شما کسایی هستن که میتونه مشکلات رو نطرف کنید این دیگه مرحله اولیه یه کاره یعنی یه پایین پایینش ها یعنی آخونده الان دانش رشته قرآن و حدیث تو مرحله لیسانس و ارشد اینا رو میخونن و تمریناشو انجام بدن کاراشو انجام بدن اما طلبه های ما نه خب این باید انجام بشه دیگه حالا اونا کار رو, رو انجام بدید بعد حالا خودمون هم نتون میبین آدم میتونیم براتون بفرستیم که مشکلاتون رو هر کنند ولی اصل کار شروع بشه چی بودیه چند وقت بیشه برام یه چیز هستم یادم یه هم نیست جا پرستده بودن الان که گفتم کی بود نمیدونم خب اینشان الله موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکم پس بنابراین شما ده هزار روایت از مجموعه روایات کتاب کافی رو با دو واسطه شیخ توسی هم میگه من از سیز نقل میکنم از کلی این اینو داری یعنی خود همین میشه یه نسخهی برای کتاب کافی اما مثلا از اون شونزه هزار تا روایت ده هزار تا این, این ده هزار تا رو با اون ناسقرن هفتمی هشتمی که ما کاملا تتابه معران نسخه یک کوهن یعنی غیر کتاب نحسول بلاقه که نسخه بسیار کوهن داره و ما بقیه کتاب همون ها نسخه, های نسخه هایی چیزی تو طول تاریخ از این رفته اما نسخه‌ای که مقابله داره یعنی علم اومدن با نسخه اصلی مقابله کرد انها داره بلاغ داره اینا باعث بشه که اطمینانمون به مت زیاد بشه اما اینکه مثلا اخترافات جزئی ای داره آره بله دار دا ولی اصل کتاب کافی با این ویژگی هایی که داره و حتی اشکالاتی که داره یعنی کافی خوب روایت مشکل دارم داره دید. اما خود اون روایت مشکل دارم میبینید که تو قرن چهاروم هم مطرح بوده و این نشوندنزه نیست که این نتره از آن انضباط چیزی برخواد داره تو کلن کتاب های مهم حالا کافی تحضیب تا حدی فقیه نحشول بلاغه، اینا از جهت نسخهی، نسخهاشون خیلی چون داره. اما مثلا کتاب هایی زهیف نه. اونا شاید از جهت تواتر نسخ این گونه نباشه. مرحوم علامه مردیسی رحمت الله در مقدمه کتاب بهار یه بخشی داره به نام توصیح المصادر. این خیلی خوندنیه. مثلا ایشون میاد بین کتاب های مرحوم شیخ صدق رو سه دسته میکن. فرقی و به نظرم توبید و اینا رو یه مرحله میگیره کتاب بعدی یه مرحله میگه اون کتاب مثلا صفات و و اینا میگه اینا مثل اونا نیست ها اینا رتبهش پایین چرا چون نسخه های منقهی ازش نیست یعنی اون موقع با همون امکانات همیشون نسخه شناسی میکرده و اینا رو متمایز هست آقا موفق باشید الله. مح ایزا توی به... دیگه ای آغله مرکوم محدسه نوری نوریم تون آخرین صفحهی به ندارم مستدرک متن آورده من اول اونجا دیدم بعد رفتم سر آاق ایزا اون اصل مطلبش مهم نیه اما اگه میگه که ما قرهط علیه تحصیل فی المره ثانیه فی سفر الحجاز این تو عبارتشونه این است اینو بذنید خود عیدا هم میاره آره توی بحث دی عاقله یعنی جلد چهار اواخر جلد 4